در راستای اون که دارن بتونن بهتر و بیشتر پیش برن خب سریع من یه مقدار توضیح بدم راژه شیره برگذاری کلاس کلاس خب هم دوستان خضوری تشریف دارن هم به صورت بعضی از عزیزان شرکت میکنن. کنن نوازم نقاطر شرایط شرایط تنوکک بود و دستگی رزیم نیشکی باشه اما خب طبیعتا اولویت با افرادی هستش که بسیارت حضوری دارند شرکت میکنند منده از همین همان به خاطر وقت و, و شرایطی که کلاس داره بسخایی میکنند اگر که یک وقت سوالاتی ممکنه پیش بیاد در این مواهر و مجبور بشیم که بندن پاسخ کنیم اینها رو خاطر اینکه حجم مطالب تقریباً زیاد همان میخوایم فشرده مطالب رو مطرح بکنیم رضا حالا فرصت اینکه بخویم بین مراحل مفصل به سوالات بفردازیم نیست ان تو فضای مجازی در خدمت دوستان هستیم اگر سوالاتی وجود داشت اونجا میتونن یا بعد از کلاس یه فرصتی در اختیار عزیزان قرار میگه برای پرسش و پاسخ یا مثلا اگر یک بحثی بحث خاصی بود بعد از همون بحث یه فرصت در اختیار عزیزان قرار میدیم برای اینکه اگر سوالی دارن مطرح بفرمون سوال هم اگر پاسخش خیلی نیاز به طول و تفصیل نداشت، همینجا در خدمت عزیزان هستیم اگر که نیاز به پاسخ تولانی داشت انشاءالله باز که فضای مجازی تو همن روه پاسخ دوستان رو خواهیم داد یادداشت میکنین اونجا انشاءالله پاسخ رو مطرح خواهیم کرد همراه با سوالی که مطرح شده بود خب خوب هدف اصلی هم که عرض کردیم خدمت دوستان آشنایی اجمالی هست با دانش فاللو یعنی مباحث قرار که به صورت اجمالی مطرح بشه سرفسا مطرح بشه و ای از های هر بحث خدمت ازیزان ارائه بشه بنا نداریم که مسائل رو مفصل مطرح کنیم چون ترک تفصیلی مبارث نیاز به زمان زیادی داره یعنی شاید جلساتی که الان ما خواهیم بذاریم در حد ده تا 15 جلسه نهایتا اون کار به بطلبه که جلساتی در حد مثلا سد جلسه داشته باشیم رضا ما منظوریم از این بخایم تفصیلی به مطالب بپردازیم البته تا جایی که ارز کردم تا جایی که بشه به سوالات دوستان پاسخ میدیم منابع معرفی میکنیم اگر دوستان خودشون خواستن بعدا مطالعات تکمیلی داشته باشند انشاءالله این منابع بهشون شون بتونه کمک بکنه یا اینکه اگر که دوستان تمایل داشتن بعد از اسمام این دوره ما میتونیم دوره تفصیلی رو شروع کنیم تو کلاسام اینجوریه که بزرغیاب انجام میشه بخاطر اینکه حالا نظم کلاس رعایت بشه و مشخص بشه که چه ازیزان حضور داشتن و چه عزیزان حضور نداشتن بخاطر اینکه قرار گواهی ارائه بشه خدمت دوستان و اینکه هالا یه مبلغی به عنوان بعده شرکت در کلاسها اقس میشه از دوستان مبلغ کمفکن پنجه هزار تمن باشه درست ی زسی هزار که ه در انتهای دوره خدمت که مرزن بودن مبادا در میگرد دوستانیم که تقریری بنویسم برایشون امتیازات در نظر گرفته میشه که حالا در مورد اون امتیازات تصمیم قطعی گرفته نشده اما خوب طبیعتاً برایشون فایده‌ای علاوه اینکه نظر خودشون از نویسی به کمک خودشون خواهد آمد ما هم یک نکاتی برای دوستان در نظر خواهیم خوب من خیلی سریع وارد مباحث بشم عرض خدمت شما که ابتدا حالا ما اگر بخوایم به خلقه رو واردش بشیم نیازه که عنوان به یک رو یک محکومشناسی انجام بشیم و ببینیم که این عنوان بخواهد به ما چی بگیم و ما از این عنوان چی میشه؟ دستگیری همونو بشه واژه لغه در عنوان فق لغه ریشهش رو همه ازیزان میدونند دیگه یا لام غنگ یا و یا لام غنگ واق هست یکی از این دو هست خب، فعلی که از این ریشه وجود داره که فعل لغا هست به معنای حرکت دادن زبان هست لغا یعنی زبانش را هم کرد خب، اه... اصل واجه لغوان هم لغت هم که میدونید لغون بوده در اصل که واو از انتهای این کلمه هست شده به جاش تا در آخری کلمه قرار گرفت خب حالا اه... معنای لغت رو هم که همه از میدونید بگه معنای لغت چه زبان واجشه. یا واژه و همین واژگان معنای کلمه لغت هست خب حالا میتونید ارتباطی پیدا کنید بین معنای لغت و معنایی که از اون فعل مطرح کردیم فعل لغا که حرکت دادن زبان بود چه ارتباطی وجود داره واضح. بله، بفرماید برای بیان لغت نیاز حرکت زبان حرکت زبان به یک شیوه خاص رو که یک صوت مثلا دارای معنا رو نتیجه بده بهش میگیم لغت بنابراین یک ارتباط معنایی وجود داره بین واژه لغت و فعل لغا خب. من از یه واژه دیگه هم میخوام کمک بگیرم همین ابتدای کار در ضمن حالا بررسی معنای کلمه لغت یه ذهنیتی از معنای ماده در ذهن دوستان به وجود بیاد ما یک واژه‌ای داریم از همین ریشه واژه لغ درسته؟ لغ معناش چی است عزیزان بفرمایم این سخنی که بیوده باشه یعنی فایده‌ای نداشته باشه خب حالا ارتباط لعب. با لغت چی هست؟ ارتباط هم خاص بله لغ لعب... رو اگر میخوام در داخل معناش لغت رو پیدا کنیم میتونیم؟ تو معناش یک غوری بکنیم ببینیم میتونیم با؟ سخن بیهوده دیگه مثلا سخن, سخن هم اینکه مجموعی از لغاته درسته؟ و لغت هم که نوع خاصی از حرکت دادن زبان و از عزیزان خب الان اینجا ما یک مفهومی به نام حرکت دادن زبان رو می‌بینیم که در سه تا واژه وجود داره و مشترکه خب از اینجا یک ای ذهنیتی در خصوص معنای ماده باید در ذهن عزیزان به وجود اومده باشه که این معنای مشترک معنایی است که بر می‌گردد به اون حروف اصلی که هر جا در هر مشتقی که ما این گروپ اصلی رو داریم بیبینیم که اون داره خودش رو به نحوی نشون میده جز از محناه خب حالا به همین صورت شما شکلگیری از داد در مشتقاتی رگمانده رو هم داریم مثلا فرض فرض بفرمایید ما یک واجه داشتیم برای سخن مفید فرض بفرماید ن هم مثلا بود لغو درسته از اون معنای مادهای که ارض شد از اون معنای اصلی که ارض شد و معنای اولیه و بیس معنای همه اینها بود لغاتی شکل میتونه بگیره که در بعضی از قیود اصلا با هم تضاد دارند یعنی حرکت دادن زبان به یک نحو خاص که مثلا معنا داشته باشد و مفید باشد میشه یک واژه پس همون میشه و مثلا واژه لغت که ما خودمون درستش کردیم به معنی حرکت دادن زبان به نوعی خاص که داره معنا باشد و مفید باشد اونجا مفید نباشه اینجا مفید باشه میبینید که دو معنای در ضدیت با هم در قالب یک ماده شکل حالا از داد اغصان مختلفی دادن ازدادی که در ماده مشترکن، ازدادی که عینا مشترکن یعنی یک لفظ برای mammary zede هم به کار رفته حالا اینجا هم یک ذهنیتی خواستیم برای شما به وجود بیاد در خصوص بحث ازداد خب بریم سراغ معنای واژه فق خب دوستان معنای واژه فعل رو زیاد باهاش مواجه شدن دیگه الحمدلله همه روزی هستید و بعد فهم عمیق این معنا در حوزه مشهور هست برای واژه ف اما شما نگاه بکنید دقت بکنید در استعمالات عرب میبینید که عرب این رو برای فهم عمیق استعمال نمیکنی یکی از لوازم معنایی که برای واژه فق وجود داره میتونه فهم عمیق باشه اما معنای واژه ف و مستعملافی واژه فق فهم عمیق نیست حالا این به چه جلد در حوزه شده؟ این جلد که در یکی از کتاب کتاب درسی هم بوده مطرح شده و حالا مشهور شده اما خب معنای دقیق فقه معنای فهم بعد از تدخوره حالا چون که فهم بعد از تدبر خیلی از اوقات میشه یک فهمی که عمیقه چه بسار این باعث شده که به اشتباه میوفتم در زیران. مثلا یک نکته خدمت عزیزان بگم در جایی که کسی یک مطلبی رو اصلا نفهمیده و ما احساس میکنیم که او فکر نکرده دقت و تحمل نکرده میخوایم بهش بگیم دقت کن تا بفهمیم بهش میگیم تفقده میخوایم بهش بگیم فقط بفهم یعنی فکر کن و بفهم کاری با عمق فهم اصلا نداریم اینجا ببینید ما از چی داریم نتیجه میگیریم که فقه برای فهم عمیق به کار نمیره لزوما از این که داریم میبینیم آغا واژه تفقه که از همین ریشه فقه هست یک جایی به کار رفته که اصلا هیچ فهم عمیقی وجود نداره اسلا صحبتی از فهم عمیق نیست بنابلاین ما از استعمال استفاده کردیم برای رسیدن به اون دقت معنایی که می‌خواستیم خیلی از لغوی‌ها در کارهایی که انجام می‌دن از این روش استفاده می‌کنن برای فهم معنا نکته‌ای که در بیان خیلی از این استعمالات عرب و نقد خیلی از این استعمالات عرب در کتب لغت وجود داره این هستش که این دقت‌های معنایی رو به وسیله استعمال ما بفهمند یعنی شما نگاه می‌کنید می‌بینید لغوی تحلیل معنی خودش رو ارائه کرده بعد از اون نگاه می‌کنید می‌بینید که مثلا 5 تا 10 تا استعمال رو ذکر کرده خب این استعمالات نکته دارن همینجوری نیستش که این لغوی بیاید استعمال رو ذکر کنه مثلاً و بره ما خیلی از اوقات کتاب لغت باز می‌کنیم نگاه می‌کنیم ببینیم گفته آقا فلان لغوی، گفته فلان واجه یعنی چی؟ خیلی از لغتی ها معنای حدودی رو میگن، معنای دقیق رو نمیگن. یعنی اغلب اوقات تکرار‌های معنایی رو در غالب استعمال می‌خوام بفهمم. اما ما متاسفانه خیلی از اوقات کتاب لغت رو باز می‌کنیم، فقط نگاه میکنیم ببینیم مثلا این واجه جلوش چه تحلیلی نوشته شده. دیگه فرقی پای این پایین مثلا دو تا سه تا استعمال از استعمالات اون واژه ذکر شده. در حالی که اینا مهمه. به همین جهت که عرشت خدمت دوستان خب از اینجا ما یک نکته دیگری هم برداشت میکنیم این نکته ای که عرض کرده خدمت دوستان بهش میگن موزه کارورد یا مکان کارورد بوده یه این سایی نیست که شما معنای موزولت ما رو به برسی یعنی موضوع خیلی چیه بله بله خب استقیمان که احباً حقیقت رو مجال شد به نحن مجال درست نفاقه میکنیم اون دیگه مشخصه دیگه یعنی اون استعمالی که ما داریم مطرح میکنیم خاطر شما آه. مشخصی که مجاز نیست اونایی که اثبات شده مثلا شما میگیم چون تفکر استعمال شده برای فهم بعد از تدبر پس معنای استعمال به استعمال حقیقی دیگه یعنی اون اونش حل شده برای ما این استعمال حقیقیه چون تو کتاب لغت ذکر شده تو کتاب لغت هم یعنی کتاب لغت فقه رو فهم بعد از تدبر بیان میکنه بله هیچ بله. رو قام عارف معنا داشت این مدت هم تو بحث‌های خیلی مقاله بود دیگه حالا بله دیگه ا عرض خدمت شما که اما ترکیب فقول دو تا ترکیب فقول دو تا خب میتونید حالا ترکیب فقول دو رو قرارو معنا کنید دو تا رویه معنایی ارائه کردیم بخمن فهم... معنای واژگان بعد از دادن بعد فهم معنای واژگان بعد از تلر بنابراین فق اللغه دانشی است که میخواد به چگونگی شناخت معنای واژگان بپردازید که ما چه کنیم تا به معنای واژگان برسیم این استفاده ای که ما میتونیم از عنوان فق لغت داشته باشیم علاوه یک هایی در مورد بعضی از فق اللغه که خدمت عزیزان حسین به وجود بیاد. با علم لغت فرق داره یا نه؟ حالا تعریف دانش فقول لغت دانش فقول لغت دانشی است که به قواعد کشف معانی منفرد و ترکیبی خود واژه و معانی مرتبط با واژه و همچنین قواعد کشف تغییرات آرزه بر معانی معانی می‌پردازد. حالا ما این تعریف رو بخوایم اگر که اجزایش رو مشخص کنیم سه تا جزء مهم داره یکی این بحث معانی منفرد و ترکیبی هست که گفتیم در خون روغم در, در معانی منفرد و ترکیبی می‌دارد و خب. می دونیم که واجه در ترکیب با سایر ها میتونه معانی بیشتری رو الغاب کنه همونطور که راغب گفته که مثلا واجه چون حرفش اینه، حرف جالبی در این زمین واجه به تنهایی مثل یک اگه یه آجور فاری داشته باشه یه گوشهای خیلی استفاده ای نداره اما مجموعی از آجرها در کنار هم میتونه خیلی مفید و پرکار باشه. بنابراین واژه در ترکیب با واژگان دیگر میتونه معنای بیشتری رو بلغا بکنه مثال شنا میتونیم در مثلاً رغبه ببینیم که رغبه با حرف جر هن و با حرف جر فی دو معنی اساسا متفاوت ممکن بنابراین ما معانی رو نباید خصوصا در واژگان منفرد جستجو کنیم باید در واژگان ترکیبی و در ترکیب واژگان هم دنبال معنا بگردیم و قواعد کشف معانی ترکیبی رو هم اشتباه بپردازیم هره می میکنم خدمتتون یک لحظه بکنم کنم میکنم بهتر باشه الان اون نفسه مستقیل رو بریم تو میتونی منش داریم آره نمی برمش این یه مثال برای این مردی ترچید میبذاریم مردی ترچید رو بریم با حرف جر یک معنی داره با حرف جر فی یک معنی دیگه داره حرف عن دلالت بر یعنی روی رویگردان شدن از یک چیز دلالت فی یعنی میل پیدا کردن به یک چیز اون حرف شما که جزء بعدی تعریف ما معانی مرتبط با واژه بود شاید در شما یانطور مهم باشه، منظور از معانی مرتبط با واژه چی هست معانی منفردی کار یعنی هم با معانی منفرد کار و بله معانی ترکیبی بله بعد قواعد کش هر دو میپردازیم هم هم معانی منفرد هم معانی ترکیبی بفرمایید سوالات آخر باشه در جود سیر بحث بله بریم بله بعد سوالات رو من یه فرصتی میدم الان مثلا بحث تعریف رو مطرح کردم یه فرصتی میگم خدمت عزیزان که سوالات شد خب معانی مرتبط با واژه یعنی چی ببین بعضی از معانی همراه با واژه هستن یعنی همراه با واژه یک معنای القا میشه اما جزء معنای خود واژه نیست مثلا ما میگیم بشین و میگیم بتمای درسته تسارث ما نه خدمت عزیزانم هست هر دو واژه معناشون نشستن اما یکی از اینها بی احترامی هم همراهش القا میشه معنای بی احترامی هم همراهش امراش میشه اما این بحث معنای بی احترامی که همراه این واژه الغا شده جزیی از معنای خود واژه نیست جزئی از مکان کار مکان کاربرد و فرهنگ استعمال واجه است یعنی این واژه در فرهنگ عرفی چگونه استعمال می شود برای بله جایی که بخوام بی احترامی کنم بلکه خود واژه که مثلا خصوصیتی نداره که بتمل مثلا لفظش یه چیز خاصی نداره که فرق بکنه با بنشین که بگیم خب چون لفظش مثلا یه خصوصیتی داره از صوتش یه جور خاصیه که بی ایترامی رو داره دوش رفت نداره به معنی رفت داره اگر هم باشه خطا باشه منابراین برمیگرده به اون فرهنگی که در کاروری واژه وجود داره از اینجا ذهن شما باید به یک مطلبی منتقل بشه که اون مطلب فرهنگ کاربری است فرهنگ استعمال است یکی از مطالب بسیار مهمی که در فلو مورد بحث قرار میگیره بحث فرهنگ استعمال واژگان که فرهنگ استعمال واژگان مفید معناست و خیلی هم مهمه خیلی وقتا ما در کارهایی که انجام میدیم در استظهاراتی که میکنیم به فرهنگ واژگان توجه نداریم بعد یه جایی ممکنه ممکن گیر کنیم خب این از معانی مرتبط واژه با آخرین بحثی هم که اینجا مطرح شد تغییرات معانی گفتیم این به قواعد کشف تغییرات معانی هم می‌پردازیم خب ببینید معانی الفاظ به دلایل مختلفی در طول زمان میتونن دستخوش تغییر باشن و توجه به این تطور پیدا کردن معانی برای فهم معنای مد نظر هر عصر بسیار بسیار بسیار ضروری است بنابراین توی این, تو این علم ما لازمه که به موارد تطور و تاریخ لغت هم بپردازیم که می‌پردازیم اینجا هم خوب یکی دیگر از اون مهم منفق و که تطور باشد، خدمت عزیزان، یک ذهنیتی به وجود ما. انشالله حالا تک تک به همه این مقاسی بردازیم ازش هایی از از میکنیم و کاربردش رو کاربرد اینیش رو خدمت از از خواهیم آن خب این بحث تعریف اگر در خصوصه بحث تعریف سوالی از از دارن بفرمایند که ما اگر سوالی نیست اگر این منلوقه نشانده میگم تا در نکت نهد این درش همین حالا این منگان اگر با آخرش توضیح اصطلاح علم لغت خدمتتون خب, خب سوالی در بحث تعریف میشه در رابطه ارتباطی میونه صوت و معنا نیست معلومه که یعنی چرا ارتباط بین صوت و معنا خب، اصلاً تفاوتش میونه هم مثالی که فرد برد 100 درصد تفاوت هست انتهام عمده ای این تفاوت برمیگرده به تو این مورد که تو این مثالی که عرض کردم برمیگرده به برمی فرهنگ کالبدی اون واژه مقارنات می به استعمال بزنگ با این استعمال چه نکته حالا خارجی یا بله ممکنه. حالا اینکه چرا اینجوری استعمال کرده بود یک ملاحظاتی توش داشته باشه که برگرده به معنا یا برگرده به خود لفظ یعنی لفظش مثلا یک لفظ خشندتری استفاده میکنه برای جایی که خشونت رو بخواهد مثلا خلقا یا لفظش یک لفظ لطیفتر یه لطافت بیشتری داره، آواهای اون لفظ، اون رو برای یک جایی که بخواد احترام بذاره مثلا استفاده میکنه هر این نکات هست. منتهیام این بودش که ما به هر حال هر نکته ای که باشه، این خودش رو توی فرهنگ استعمال نشون میده به هر حال هر نکته ای که وجود داشته باشه، غرف این رو استعمال کرده در این موضع، چرا؟ برای این مقام. حالا اون چراییش یک استفاده هایی داره طبیعتا. اما ما فعلا با اون کار نداریم. در میگیم که فقه اللغه اون اصلا بعضی از مباحثش به فقه اللغه اساسا برمیگرده. بعضیش به علم الصوات برمیگرده. بعضیش به علم حروف برمیگرده. خیلی از این مباحث، اینا متکفلش فقه اللغه نیست. پسا صحبت هم ازش نمی کنه. اون میگه یک تحلیل زبانیه که ام های خودش هم داره اونطور خب دیگه خللا هم متکفلش نیست مثلا تو مثالی خود بفرمایید که ساده بشیم و به زمان یه معناگردین براش فقط لوازم معنایی و استعمالش رو من بله بله فرهنگ استعمال و لوازم معنایی شما نیاز به اثبات داره بله دیگه و یا اثباتش اون مثال یک نفر به شما به تمر ناراحت میشه دیگه نه نه اینکه شما که موضوع موضوع مضمون اوناییه که نیاز به اثبات داره و الا غالباً خب دلالتش قابل خودش رو داشته باشه. دلالت بچی داره به باید معنا معنای مضمونش نکرده. معنای چیه بفرمایید. من نمیدونم چیه ما میفهمیم دیگه ما اهل زبانی هرکس به به ثمن ما میفهمیم منظورش که بشین. اضافه اینه میخواد با بی‌احترامی رو این به اضافه شد. عکس شده در معنای به ثمن. همین چجوری عکس میشه در معنای من روحانه درم نیستن که آدار این روحانه درم نیستن که آدار نا خواهیم خب صحیح کنیم چون مثال فارسی میگن به زمان به زبان خودتون برگردید وقتی میگهیم به تمرگ ترجمه کنیم یعنی بشیم ما تا این بشیم رو در یه حالتی میگهیم که میخوایم وست دارد داریم بله داریم داخل خود معنه نیست ببینید دلالت رزومن به وسیله وضع و معنه موضوعه اتفاق نمی موزه کاربورد اصلا تمام نکته مهم بود موزه کاربرد هم میتونه القا معنا کنه ببینید لفظ و معنا ارتباطشون میتونه به وضع باشه میتونه به چیزای دیگه باشه مثل اینکه از این ببعد اگر ما بشین رو برای بی احترامی به همه با هم تاخو کنیم بشین رو برای بی کار ببریم آیا این ارتباط بین لفظ و معنا بی احترامی شکل می یا نمیگیرد؟ بشین بابا همین یه بابا اضافه میکنی؟ بله دیگه، اینا فرهنگ های کاربریه اینا همه میشون فرهنگ های کاربریه بشین در کنار یک کلمه دیگه اگر باشه برای این الغای این معنا استفاده میشه اینا وضعی نیست اینا ارتباطیه که بین معنا و لفظ در ذهن شکل میگه به هر قدرتی شما نگاه بکنید، مرحومه شاید سر در این زمینه مطلب خوبی دارن چون میگذرم ما کلا وضع رو قرنعکید میدونیم یعنی مقارنه بین معنا و لفظ به نوعی که مقارنه معکد باشد مقارنه شدید باشد این لفظ میاد اون معنا هم بیاد حالا این معنا میتونه جزی از خود لفظ باشه به واسطه اینکه این لفظ برای مرزون لن فلان قرار داده شده به یا به واسطه اینکه این لفظ چنین کارورد دیده ما مقام استعمال و مقام وضع یکی میکنیم شما ادعاتن در مقام وضع ولی برای اثبات مدعاتن ز مقام استعمال استفاده میکنیم اینکه ما میگیم که دو معنا دارم اگر که یک لفظی ما بخوایم در مقام وضع برا شمی ترجیب و بلامرجه بله شما میاد میگید در مقام استعمال ما تفاوت میزنیم بین ولی در مقام استعمال حرف نیست اما توی ان فقاللاغا که شما درید مید که ما اینو کشف در مقام وضعه در واقع واسه این چیزا امکان نداره نه ما قواعد ارزم هم همینه میگه ما قواعد فرهنگ کشف فرهنگ استعمال رو هم میگیم فرهنگ استعمالی که نتیجش قواعد معانیه دیگه بله فرهنگ استعمال برهن. درست بشتر. یعنی ما فرهنگ استعمال رو جداگانه بررسی میکنیم یک بررسی داریم برای معانی موضوعیلا یه بررسی هم داریم برای فرهنگ استعمال یعنی هر جنبه‌ای از لفظ که میتونه به ما معنی انتقل کنه رو می‌خواییم در فهر اللغه ما بررسی بکنیم نکته این مثله می‌دهد که جمعهاش هم عرض کردیم دیگه بحث تطور هست که میتونه در معنا اثر گذار باشه بحث فرهنگی استعمال و این‌ها هستش معانی مرتبط با باجه و بحث خود معنای واجه هست که روی همین تعریف قیل شد خب تفاوت فهر با متن ما یک چیزی احنا ما کتاب ال این خب این هنان ترتیبیش هستند بر اساس حالا یا صوت این خب این چجوری یعنی از صوت به معنا خب این چی میشه مثلا تو همین بررسی میشه یا؟ ببینید بعض میگن که این تو فخورلاغت بررسی میشه و قبل قدیم هم تو فق مواس فخورلاغت بررسی میکردن اما الان دیگه به واسطه این که مثلا همون اعتباری که برای نحو افتاد. و سر از نه جدا شد حالا هم به همون علت این جدا شده از فخله و در علم الاسباب و علم الحروف عرض کردم خدمت دوستان در علم الاسباب و علم الحروف اینا پیگیری میشه هر حجم با علم الاسباب و علم الحروف کم و استفاده هایم از علم الاسباب و علم الحروف میشه تو فخله ها کم علی خب به عنوان الان به عنوان یک کلمه جدا حساب میشه کتابای مجزا داره و خیلی وقت که تقریبا این اتفاق واسه آیا دیگه سوالی نیست؟ خدمت عزیزان این مطلب رو جابه‌جا خب. اما تفاوت فقه اللغه با متن اللغه. ببین ما یک متن اللغه داریم، رفتش فقه اللغه. متن اللغه چی؟ متن اللغه در حقیقت سازی و تطبیق قواعد فقه اللغه است که آیه دایی خلاصه این مطلب بهش اشاره کردن ابتدای کلاس. این پیاده‌سازی مثل چیه؟ مثل تجزیه‌ای که شما دارید انجام میدید در کلاس تجزیه, تجزیه. اذا ترکیبی که شما انجام میدید اونجا دیگه حرفی از قواهد صرف و نحو و اینا مطرح نمیشه اونجا قواهد پیاده سازی میشه اونجا شما رو پیاده میکنید مثلا میگید که این واژه مثلا فعل است یا اسم است دیگه نمیاید بگید که خب مثلا شناسایی اسم و فعل این پنج تا قاعده رو داره مثلا نشانه های فعل و یک یکی یکی تو تجزیه ترکیب می میگید که این این است تمام شد این فعل است حالا دلیلش هم مثلا ممکنه ذکر کنیم اینجا هم همینه توی کتاب های لغوی که شما دارید میبینید ما پیاده‌سازی و تطبیق قواهد فقه و لغه رو داریم اون چه که در ذهن اونها بوده از قواهد فقه و لغه شده روی تک تک لغات و در غالب کتاب لغوی معاجم لغوی ارائه شده بنابراین متن اللغه یک دانش جزئیه برخلاف خلاف اللغه که فقه اللغه یک دانش کلی این یکی از تفاوت‌های متن اللغه است با تفاوت بعدی اینکه در متن ما سخنی از قواعد کشف معنا و اینا مطرح نمی‌کنیم معانی کشف شده رو عرضه می‌کنیم مثل صرف و نحو اینا که اینم خدمت شما عرض شد این دوتا تا تفاوت وجود داریم رابطه شما نسبت میشه از حیث منطقی کلیه جزئی میشه حالا نمیدونم از حیث منطقی کلی و جزئی میشه یا نه ولی تبایون. آره تواینه قاعدتاً باید تواین کلی باشه آره منظورم واژه جنبه تطبیقی باشه جنبه تطبیقیه دیگه مثلا مثلا آره مثل اینکه شما ببینید رابطه منطقی بین مفهوم استلاق چیه تواین کلی چون در چون تاریخی مسادیق توايونو قواعد بررسی آره حالا خیلی مهم نیست که ارتباط منطقی باشه میدونیم دیگه در این راجع چی صحبت اونجا قواعد کلی داره مثلا میشه تو فقه لغه این قواعد کلی داره پیاده میشه توی متن لغه روی تک تک کلمات مثلا ما فرض بفرمایید که 100 تا قاعده داریم این 100 تا قاعده رو پیاده میکنیم رو واژه فلان و به این میرسیم که این معلاش مثلا این هست اینطور خب یه اصطلاح دیگه داریم اصطلاح علم این اصطلاح پرکارورده و به نظرم خوب رسید که توضیحش بدیم بعضیها علم اللغه رو به, به این معنا استعمال کردن که شامل تمام علوم ادبی میشه یعنی شامل صرف میشه شامل نح میشه شامل لغت میشه شامل فخ لغه میشه شامل همه علوم ادبی هم مذکوری و میشه یکی از مصطلحات یکی از معانی اصطلاحی علم اللغه هست یک معنای اصطلاحی دیگه علم لغه همین متن لغهیه که گفتیم همین متن لغهیه که گفتیم یک معنای اصطلاحی هم همین فرقه لغهیه که داریم میگیم این ستا اصطلاح رو داره باید به این دقت کنید از دراغین و اینا اگر تو آثار نگاه کردید دیدید راجع به ارنون لغت داره صحبت می باید دقت کنید که این یک وقتی باعث اشتباه افتادن نشه خب من بحث بعد بعدی موضوع فقال لغت هست اگر دوستان سوالی در این زمینه دارن در مورد متن و لغه و فقه و لغه بفرمان تا بحث جدید رو شد نیست دوستان مجازی هم اگر که سوالی دارن ما در همهشون هستیم متن هم و لغه میشم و کتب لغه؟ بله؟ بله متن و لغه میشم و معاجم لغه دواخت، باید، یعنی رابطهشون جوریه که از متن و لغه فقه و لغه رو دروردن؟ نه نه به لغه وجود داشته به لغه از اون استفاده برد. کردن متن لغه رو خروجی شده, خروجی شده آره حالا اینکه تاریخچه دقیقا چطور بوده طبیعتا در ذهن طرف یک سری در ذهن لغه یک سری وجود دا اما تاریخچه تعلیفیشون چطور بوده آره اینکه تاریخچه تعلیفیشون چجوری بوده ظاهراً اول متن لغه تعلیفاتش وجود داشته برد. تعلیفات فخول لغه چون که واضح فخول و اولین کسی که الان میخواهم تو هنگ بخص بگیم واضح فخول و اولین کسی که تعلیف کرد و قواعد فخول رو بهش تصریح کرد ابن جنی بوده خب قبل از ابن جنی خب خیلی از کتاب های لغوی وجود داشته مثلون لغه در حالی که کتاب فخول وجود نداشته منابراین ترتیب ذهنیشون خب مشخص هم و ترتیب تعلیفیشون ظاهرا خب موضوع فخورلغه چیه؟ کلمه از جهت معنا همون مسئله که خدمت اجزان ارز کردیم فخورلغه تو هر جنبه ای که به معنای کلمات مربوط میشه و به هر مرتبه ای از مراتب معنا به هر صورتی که باشد و مرتبط با لفظ باشد میپردازه خب بحث ضرورت یادگیری فخورلغه رو داریم بحث ضرورت یادگیری فخور اللغه رو ما الان یک خلاصه ای ازش میگیم خدمت عزیزان انشاءالله جلسه آینده مفصل به این میپردازیم ضرورت یادگیری فخور اللغه چی هست ضرورتش از لحاظ عرفی ضرورتش از دیدگاه علما و از جنبه های مختلف به بحث ضرورت میپردازیم و مفصل این مطلب رو میگیم چون ما میخوایم الان فخول لغه رو معرفی کنیم بحث ضرورت بحث مهمتریه یه مقدار وقت بیشتری انشالله روش میذاریم خب برای فهم هر زبانی ما خب طبیعتا نیاز به این داریم که معانی اون زبان رو بشناسیم ویژگی ها، تطورات، فرهنگ واجبان اینا رو بشناسیم خب برای شناخت این امورم طبیعتا به فخول اللغه نیاز داریم ما هم که خب زبانمون زبان عربی نیست اگر هم زبان عربی بود باز نیاز داشتیم حالا این رو جلسه آینده خدمت اعزان میگم اما زبان ما که زبان عربی نیست طبیعتا برای فهم قرآن حدیث که به زبان عربی هست نیاز به فقه اللغه خواهیم داشت همونطور که نیاز به صرف داریم نیاز به نحف داریم بنابراین فقه اللغه مثل صرف و نحف یکی از مقدمات ضروری اجتهاده شما اگر بخواید قرآن و حدیث رو درست بفهمید، بسیاری از این که الان رخ میده به خاطر عدم توجه به نکات تفرق لغت مطرح میشه. عدم توجه به تطور واژه، عدم توجه به فرهنگ استمالی واژه، عدم توجه به معنای واژه. یعنی خیلی وقتا خودم نگاه میکنه میبینه معنای واژه درست فهمیده نشده. اون معنای درست فهمیده نشده، یک سری چیزهایی بعدش پشتبندش میاد، یک سری توضیحات میاد، یک سری حرفای عرفانی درست میشه که آقا یه چیزی که با معنای واژه جور در نمیاد، خلاصه درست بشه. چرا؟ چون توجه نشده و حالا خیال ذهن این که خیال میکنه خب معنا همینه، پس حالا باید اینو یه جور توجیه کنم در حالی که اصلا معنا اون نیست. و نیاز به این توجیهات از اول نبود اگر که این خطا اتفاق نمی خب حالا من یه چند تا نکته خدمت ایزان بگم به عنوان مثال شما مثلا در اصول یک بحثی دارید به نام علامات حقیقت و مجاز درسته علامات حقیقت چیه؟ دوستان میتونم بگن معروفتر هاش توادر رو نمیدونم صحت حمل و عدم سهت سلب و اینوز از عزیزان میتونه توضیح بده برای ما انسباغ معنا به ذهن معنا به ذهن از لغت خب حالا این علامت معنای حقیقی درسته؟ خب این انصباق معنا به ذهن در چه کسی باید باشه تا ما اون رو بگیریم در اهل لغت در اهل لغت یعنی در عرف در درسته؟ خب این یک نکته. نکته بعدی اهل لغتی که در عصر حاضر هستن یا اهل لغتی که در عصر صوروی کلم بودن دوباره دومی دوباره خب، الان این تبادوری که ما الان ازش استفاده میکنیم مثلا در بحث صحیح و اهم که میگیم الفاظ معاملات ورز شدن برای معاملات و عبادات وضع شدن برای معاملات و صحیح یا برای معاملات عباداتی که اهم از صحیح و ناسحیح باشن اگر دقت کرده باشید مهمترین ادله طرفین این چیه؟ تبادره درسته خب این عجیب نیستش که من دارم میگم معنا علف است دلیلم تبادره شما هم میگی معنا به است دلیل شما هم طبادره. اینو استادمون آجاهای اسمشون فراموش کردم آجاهای هیدری آجاهای هیدری فسایی که توادر یک, مح... یک دلیل وجدانیه و لذا ما نمیتونیم بحث کنیم با کسی که توادر رو دلیل خودش قرار داده او میگه توادر ما میگیم در بحث رو میبندیم آیا نمیشه کاری کرد که این گره باز بشه واقعا سآل اینجاست اساسا، آیا اگر ما بتوانیم به ذهن عرف و معنای متوادر عرف در عصر محسوم یا در عصر صدور اون مت دست پیدا کنیم نباید بریم دنبالش الان ما چه میکنیم ببینید الان اتفاقی که میفته اینه که من مثلا میگم لفظ سالات برای سلاط صحیح وطل شده دلیلم اینه که تبادر ذهنی من اینه عملا این اتفاق داره میفته چرا چون ما میپرسیم آیونی که شما میگید ما دلیل اون تبادر شما رفتید عرف و بررسی کردید مثلا رفتید از افراد عرف پرسیدید تحقیق پژوهش میدانی کردید من بعید میدونم پژوهش میدانی اتفاق افتاده باشه ما دو این رو موقع داشتیم می‌خوندیم از استادمون سوال کردیم حالا چون ما موقع معلومات فقل و قوی داشتیم از استادمون سوال کردیم گفتن اینجا یه اصلی به کار میبرن. میگن خب اصل اینه که بقیه مثل من باشه بله بقیه هم مثل من باشن بقیه عرف مثل من باشه خب این یه اصل پس ما اینجا میتونستیم تغییر تحقیق کنیم تحقیق نکردیم یه اصلی کردیم نکته بعدی گفتیم عرف قبل اصر نزول ملاکه خب حالا شما میگید عرف الان اینه پس پس اینو نمید. چی درست میکنی؟ بعد یه استثاب قهقرایی میزنیم میگیم انشاءالله اون همین بوده عدم ادبه نوی استثاب قهقرایی میگیم انشاءالله اون موقع معنا همین بوده در حالی که ما دسترسی داریم به استعمالات استعمالاتی که الان ما بهش دسترسی داریم خیلی بیشتر از استعمالاتیه که امثال خلیل و ابن فارس و اینها بهش دسترسی داشتن با توجه به منابعی که الان در دسترس قرار گرفته با توجه به کامپیوتر و اینکه ما امکان جستجویی در اینها رو به راحتی داریم بله درسته اونها متصل به عرب اصیل بودن اما نهایتا عرب اصیلی که توان مسافرت و سوال کردن از اونها رو داشتن رو بررسی کردن و اونها رو هم کامل تازه بررسی نکردن یا استعمالاتی که در دسترسشون بود رو در حد توان خودشون بررسی کردن اما الان اون چیزهایی که ما در اختیار داریم خیلی بیشتر از چیزایی است که اونها در اختیار دارن و توانمون در بررسی اونها هم خیلی بیشتر از توانی که اونها داشتن اما ما این کارو نمیکنیم. چرا نباید این کارو بکنیم خب این راه رو الان جدامون اللغه قرار میده فخورلوغا به ما میگه من, می من یاد میدم که چطور معنایی که در عرف اثر صدور این کلام بوده رو پیدا کنی ما چرا از اون استفاده نمی کنیم؟ بنابراین ما توادر رو به این معنایی که الان داره ازش استفاده میشه قبول نداریم هرچند فی نفسه توادر علامت حقیقت هست منطقه به همون تفسیری که ارز شد که فهمیدنش و کشفش و رسیدن بهش نیازمنده به خلقه هست خب ببینید چقدر وقت تفاوت ایجاد میشه در کار خیلی قضیه متفاوت میشه خب دوستان اگه در خصوص این مباحثی که تا اینجا مطرح شد سوالی دارن بفرما اگر سوالی نیست ما کم کم دیگه کلاس رو تمام کنیم دوستانم برسم به کارهایی که دارن این ما هدفمون اینه که بتونیم، اگر بتونیم ده جلسه ای تمامش کنیم حالا بستگی به این داره که چقدر سوالات مطرح بشه چقدر ما بتونیم سریع مطالب رو بگیم و اینکه کشش دوستان چیجایی بشه بله بله الان که ما فقط در بحث روس سمانی هستیم فعلا حالا انشاءالله وارد مباحث که شدیم خلاصه ای از هر بحث رو مطرح میکنیم میگیم محتوای دانش چی هست صرف چی هست چی مطرح میشه توی هر صرف و اقوالی که مثلا اونجا پاسخهایی که به سوالات هر صرف داده شده رو مطرح خواهیم کرد کاربردهاش رو میگیم نمونه هایی از کاربردش میاریم کاربورد های عینیش نه کاربورد های فرضی استاد ببینید شما حالا ما ان جلسه قاینده آینده میبینیم فرمایشات علما حتی در حدیث ما اشاره به لغت رو داریم چرا تو دو اما خب متاسفانه این کم کم کنار رفته در ایام گذشته کار می شده، لغت کار می کرد ولی خب کم کم این به طور کامل کنار گذشته شده و این خیلی بده یعنی حتی ما یک روش شناسی کتب لغوی هم توی سیل ادبی حوزه آموزش نمی دیم بله اینا خیلی بحث داره ببینید هر لغوی به لغات چه منطقهی پرداخته ببینید آیا ما احادیث اراقی رو همون جوری که احادیث حجازی رو معنا کنیم باید معنا کنیم با این فاصله زمانی مثلا حدیثی که از امام هادی علیه السلام در دست ما هست یک جور باید معنا کنیم منطقهی که ایشون بوده فضایی که ایشون بوده مخاطب ایشون با فضایی که مثلا امیلال مؤمنین و رسول الله توش بودن یک جور باید باش مواجه بشیم خب خیلی فرق میکنه اینا خب حالا کدوم لغوی ها به کدوم اینا بیشتر پرداختهن تطبیقیشم به اصطلاح هست شاهدی که مطلب بکنم چون توی وقت بصره رو به عنوان تئوری قابل ولی مثلا آیه در حدیث همچین چیزا رو داریم اختلاف در فقه ایجاد بکنه اختلاف در فهم ایجاد بله. بله مثلا ما همین مقاله‌ای که داریم الان می‌نویسیم مقاله تمسا مناشناسی واجه تمثال. این چیزی که به اشتابه حال رسیدیم اینه که در واجه تمثال یک تطوری رخ داده واجه تمثال رو شما در بحثی رو که می‌فرمیدی رو رفتن؟ بسی که مثلا مثلا در حراق و حجاز بله دیگه همین دارم عرض می کنم تفاوت در فتوه هم پیش می آم در رو شما دارید مثلا می‌ذارید؟ می‌خوام می‌گن در حجاز می از... جغراف... و... جغرافیا، جغرافیای یه... بله نه بله. بله فرق میکنه شما نیا کنید اصلا اون موقعی که فرقی از جهت انسانی و زبانی با الان نداشته که الان شما مثلا توی مازندران ما یه شهر میرید صحبت میکنید لعجه شون یه جوریه اصطلاحاتشون یه جوری، یک اصطلاحایی دارن مثلا برای یه معنی بکنه همون اصطلاحاو میبینید دو دوتا شهر مومرتر برای یه معنی دیگه بکار داره میرید یا این که اصلا صحبت کردنشون متفاوته. ترکیبایی که به کار میگیرن متفاوته الان شما زبان عربی منطقه حجاز مثلا منطقه حراق فرق نمی کنه؟ هر زنگی چون چونکه بخنچه به کنار گذاشته شده میخواه میگم شاید بر برخی از مبایسش این بوده که کاربور و تأثیران چنانی در استنباط نداشته الان فقه ها استفاده میکنن حالا ما انشالله میاریم قلمباش باید مشخص بشه دیگه هم استفاده می ما بحث در تفسیر الان شما تف... جلسات تفسیر های جوادی رو ببینید استفاده می ایشون و در فقه استفاده میشه. فقها استفاده میکنند، اما ها تو سیر حوزه ببینیم نیست دیگه حالا هر علتی که داشته متاسفانه نیست و نیازه که تکمیل بشه این حالا ما هم اصلا هدف اصلیم و از برگزاری جلسات آشنایی با فقه قللو همین بوده که این ضرورت رو معرفی کنیم دوباره چون این ضرورت رو نسبت بهش قبلا اطلاع عمومی وجود داشته ولی در حال حاضر متاسفانه نه شما الان از هر کدوم از علمایی که درس خارج هم هستن بپرسید در مورد لغت حداقل این رو به شما میگن که آقا یک روش شناسی کار لغویان دیگه باید توی سیر هوزه باشه خب ما که نمیتونیم حدیث رو برداریم علمونجد باز کنیم حدیث مانو کنیم که. آخه آیا رسالتش، رسالت خودش رو این قرار داده بود که الفاظ حدیث رو بررسی کنه نه ببینید اینا مهمه در حالی که اصلا ما توی هوزه ند. و خیلی کارورد داره یعنی شما به یک نفر بگید که کار کرده تو این زمینه چه در فقه چه در هر زمینه دیگه تفسیر کلام بفهم در هر زمینه دیگه کار کرده به شما میآید بهش بگید که من مثلا با الموجد میخوام حدیث معرا کنه قرآن بفهم میگه موفق باشی خدا حفظ شما بپرس الموجد یه سری قواعدی در همین ضمن مطالعات و حضور در درس خارج باش مواجه میشه مثلا بله باید به به محجد. تاریخ مثلاً باید توجه کرد به تطور باید توجه کرده برخواهی روش فهم حدیث هایی که اخیلن نوشته شده همین مطالعه بشاره شده بله برخواهی اضافه بر اون چیزهایی که گفته شده در خب همونان هم بخواهی ما نداریم تو سیر ووزه دیگه بر درسته؟ اونها رو که تو سیر وزنیم کنار گذاشته شده میخوام بگم که آیا مواحثش در ک کتوب... حالا فقه و در کتب تفسیر اینها میشه دستوریخته جمع بله میشه ارزم اینه که اصلا مباحث ضرورین حتما مطرح میشن ببین مثل چه مثلی مثل میمونه که بله مثل میمونه که ما بگیم آقا سرونهف چقدر مثلا تو فقه ازش استفاده میشه پس نخونیم بریم تو درس خارج بشینیم مثلا ببینیم گریخته از سرونهف مطلب میگن بعد ما بریم مثلا اونجا حالا هم... که نیازه اونجا میگن دیگه. به همون دقتی که حالا توی اصطلاح تخصصی خونده بشه آیا به همون میزان استفاده میشه در؟ بله بله بله استفاده میشه. ما مطالبی که با استادمون داشتیم، مطالبی که این طی این 4 سال حالا مبنای مطالبی که میگیم خدمت عزیزان هم مطالبی که تو این کلاس‌های های دو... میشه مریکا. اجازه ای احسانی فن. بله. احسانی. مطالبی که داشتیم ا برا خود ما عجیب بود ما اون موقع مثلا شروعش پایه مثلا پنج بودیم ولی استادو می گفتن که مثلا این مطالبی که شما پیاده میکنید تغییرایی که مینویسید خیلی از اساتید در چندین نفر از اساتید درس خارج که اطلاع پیدا کردن در مورد این کلاس مطالب میگن حتما میخوام یعنی ایشون یکی از علتهایی که کلاس ادامه داد این مدت خودشون گفتن ما چند بار میخاستیم تعطیل کنیم اما بسیاری از اساتید استاد گفتن, گفتن. اساتید ما گفتن که حتما ادامه بدید اینا نیاز ضمن این که به جهت همین دور شدن موزه از این فضا متاسفانه فضای دانشگاه خیلی تو این زمینه کار کرده, کار کرده و فضای علمی در این زمینه دست دانشگاه و از اون بدتر تا اینکه قربی ها متاسفانه خیلی تو این زمینه جلوتر از انا هستند. لذا شما مثلا آثار چامسکی رو فرموده استادمون اگر بخواهیم میبینی خیلی از مواسی که چامسکی تو کتابش مطرح کرده کارورده اساسی داره تو اصول تو فرق، تو تفسیر خوش. بفهم انام جای یک کتابی مرکز میتونم چاخیره خیلی کتاب خود بود همین درامتی کنم بر روشیناسی همین بله، اینا رو چاپ کردن که تو سیر علمی خودت قرار بگیره دیدم کتابی می‌فرمایید بله، کتاب شناسی بله بیشتر کتاب شناسی. بحث کتاب شناسیه دو این بودش که حداقل حداقلش یک بحث کتاب شناسی مختصر نیاز است که طلبه ما اینجوری نباشه که رفتش سراغ تبلیغ میخواد یه دونه حدیث معنا بکنه بره مثلا اذا رو نگاه کنه مثلا سر در نمیاره از روش کارشون آخر سر مجبور بشه بره مثلا ترجمه بکنه ترجمه حالا اراده‌ای که داره دقتهایی که نداره ببینید خیلی اثرگذاره هم تو فضای تبلیغی هم تو فضای پژوهشی هم تو فضای دقی درس خارجی خیلی اثرگذار و اینا باعث ایجاد تحول میشه تو خیلی از مباحث مثلا این بحث توادر که خدمت شما عرض کردن خب اگه ما این شکلی بهش نگاه بکنیم بحث متفاوت میشه یا مثلا در بحث دلالت امور مختلف بر وجود ما بیایم که حساب بکنیم بیریم چه چیزایی دلالت بر وجود هم. آیا فقط هیئت امر و مثلا ماده امر که ما فقط این تو اصول بحث میکنیم این همه الفاظ هستن که دلالت بر وجود دارن فقها هم از این استفاده میکنن تو درساشون خب اینا بیاد مطرح میشه تو مباحث الفاظ وصول خب اینا رو کی باید بره بررسی بکنه چه جوری میشه فهمید که این دلالت بر وجود داره شرایط دلالت بر وجودش چیه مثلا همون رو فقها لگا میاد به شما همون رو هم, هم, هم فرودن مثلا توی خود اصیغه رو هم بعد میگن که حالا وقتی میریم مواجهه میشیم با تطبیقاتش بعد بله خیلی جا میبینید که اینطور نیست بعد یعنی اینا رو کی باید کار کنه ی که وظیفهبار با روش‌های فخل و قوین اول معلووم میشه. یه نکته ن هست که چ اگر ما مثل ول وقتی ول ما یه قواعدی رو میگیریم ولی توی فکریاده بله از پیاده. خیلی از مورد های فکری و مورد های تقصیری و مورد های استنباتی واقعا جلو اون قواعد رو می گیره. ب عکسش هم هست عکسش هم خیلی جا در ف سری کارایی می کنیم. یه قواعدی استفاده می کنیم. که سر جاش مثلا نمیکنه. بهش نمیپردازه. و چه بسا همین مطرح نشدنش باعث میشه خطاهای زیادی به وجود بیاد. همین که مطرح نشه خب فقیه مثلا میره به فراخور همون نیازی که داره اون لحظه میاد مثلا به اون میپردازه و کارشو پیش میبره. ولی خب این خیلی فرق میکنه که تألیف تو این زمینه صورت بگیره، کلاس وجود داشته باشه، پژوهش وجود داشته باشه. و کار تخصصی متمرکز روی اون کار انجام میشه خب خیلی متفاوت میشه خطاها خیلی کمتر میشه الان مواردی هست که بتونیم ما تطویق های همین فقر رو توی استعمال های ببینیم بله مثلا مقاله نوشته شده باشه اصلای چاپ شده باشه بله همین مقاله که ما نوشتیم روش شناسی فقری از ما میزید شناسی فقری ما بررسی کردیم مطالب علام رو. و اونجاهایی که ایشون از روش های فخورلوقت استفاده کرده بود و ام توی فقه ازش فتوا گرفته بود در سیر افتاق ازش استفاده کرده بود اینا رو جمع بری کردیم دستبندی کردیم و مقاله خوبیم خوبی هم شده هم هست یعنی زیاده اگر کسی شما اگر بدانید که فخورلوقت چی داره میگه چه بسا ورق به ورق مسائل درس خارج فقر رو اگر نگاه بکنید بتونید ببینید خیلی زیاده اونطور به طور خاص اگر بخوام بگم کسی اینها رو بحث کرده باشه و پیاده سازی کرده باشه تصریح کرده باشه به اینها آثار آقای لاریجانی هست شیخ صادق حامولی لاریجانی ایشون خیلی تو این زمینه مفصل کار کرده و بسیارم قوی و رتقشمنده بسیار ایشون جزه اولین افراد یا اولین فردی بود که اینجور مباحثو رو اومد به سراحت مطرح کرد بله کتابهایی که که تعلیفاتی دارن ایشون اونجا به این مطالبی دارن زیاد پیدا میشه از این مطالب استاد ما میگفتن که شاگرد ایشون بوده میگفتن که من مثلا به اصول مبحث الفاظ که رسیده بودیم به ایشون گفتم که خب ما مثلا چرا لفظ ینبقی رو بحث نمی که آیا دلالت مثلا بر وجود دارد یا ندارد مثلا دلالتش چیه ماده هم مثلا بحث میکنیم چرا یمبقی رو بحث میکنیم چون گفتن که بله باید بحث کنیم ما یه ملاک هم دادن گفتن اگر ما توی احادیث و منابعمون دهتا تا حدیث پیدا کنیم دهتا تا حدیث پیدا کنیم که الفاظی که احتمال میدیم دلالت بر وجود داشته باشن توش وجود داشته باشه یک لفظ واحد توی دهتا تا مثلا باشه یا یک ترکیب واحد مثلا لیسه مسلم این لیسه مسلم یعنی چی؟ چقدر حدیث داریم که در مورد لیسه مسلم صحبت میکنم این دلالتش چیه؟ اینو بیایم بحث بکنیم. چون میگفتن که باید بحث بشه. تو مثلا الفاظ اصول باید بحث بشه. به حال دیگه این بود جلسه امروز. تا ایشون اشتن... ان اشان... اگر که عزیزان زحمت بکشن تغییری اگر نوشتن در ما بفرستن خیلی حالی میشه ممنون میشه اگر مقالاتی یا نوشتی میذاریم حالا اون مقاله, مقاله که ما نوشتیم چون که به ما گفتن که اجازه انتشار ندارید اون مقاله رو نمیتونیم خیلی در نمیشه کرد مثلا چاپ نشده چون هر چاپ نشده. تو فیش توفیش پروانیم موارد داره موارد مثلا مواردش به جزئی میتونیم بیاریم حالا تو همین مثالهایی که داریم خودمون کار میکنیم میگیم مثالهایی که کاربرد فقهی دارن مثالهایی که کاربرد تفسیری دارن میگیم خدمت عزیزان میگیم کتاب دانشگاهی هم به پیشنهاد مراجعه منابع هم پیشنهاد میکنیم هنوز نرسیدیم به بحث معرفی منابع انشالله این بحث ضرورت که تمام شد منابع میگیم یا اینکه حالا تو همون فضای مجازی بفرمایید لیست منابعی که داریم خود شما میگیم بیشترش هم منابع متاسفانه دانشگاهی و بعضی هم غربی و اینا هست مگر حالا معدود افرادی که تو بوزه تو این زمینه کار کردن مثلا های قایمینی ها و همثاله که اونا ایشون هم از سبقه دانشگاهی هم دارد که تو این زمینها کار کرد ما در خدمت شما هستیم حالا اگه یادآوری کنید اینا را توی گروه میفرستیم. صلی الله علی سیدنا محمد و الله صلی الله علی محمد